على النبي الله عليه وسلم و الالهه و شده. کلمات شده این تجام وحث اوهی کنیم کلانم شد کلمات مرموم استاد شدید که محور مراجعات آیان باشه ایشان در حوال مخموم وحث استدلال با آیه به لحاظ مفهوم بس اشکال کردن که بس مشعر به هست قبول داریم لیکن این در نیمیان که علت حسره باشه این که راجع مخموم مفهوم شرط هم اشکالشون این بود که اشکال نقلی کردن که این قضیه مسئول برای بیان موضوع یعنی انجارکون فاسقون به نبعه اینکه که خبر رو بیاره و از سازه خبر محقب میشه و تبعیان فرق صورتون پس اگر خبر موجود بیگه تبعیان ساله به نبعه موضوعه و این به اصطلاح موجب مفهوم نمیشه بعد ایشون اول زحصشون از صفحه ساده اول اشکالشون من عرضم اشکال به مرموستاد مثل ما بگم بحث متنصفان در سلام ایشون ایک مقداری مسترک شده یا لاعقل اگر عنوان می دادن به اون مثلا با خط تیه عنوان می دادن بهتر ایشون اولا می فرمون بفیه اندر موضوع خیلقه هو ندر مجیحون فاسقه به شرطون در وجوب تباییون هم در نامحکومه هایی نیشه خبر اگر فاسقه بود تباییون کنه یعنی غیر فاسقه بود تباییون مطمئن غیر فاسقه هم عادله بعد فلا تکنون غضیهت و شرطیه مصروب تل ویان موضوع تحور موضوع بعد ایشون توضیح نم توضیحی که ما در بحث گذشته عرض کردیم تعبیل ایشان هر جایی که به اصطلاح جزا خودش به نفسه عقلن متوقف بر شرط باشه اونجا باید تحقیه موضوعه اما اگر عقلن متقف باشه نه باید تحقیه موضوع نیست مثلا میگن ایشون در این روز اختبردن تخته نخواه خب معلوم جزا که اختبردن باشه بر برولده لذا اینجا موضوع مفهوم نداره و او خرایخون متوقفهن علیه به تحب و دل مولوی به قولیشن مثل یعنی زید که موضوع دو حالت داره مجیب و عدم مجیب در حالت مجیب, مجیب شما اکرامش نکن محصول میشین در حالت در مجیب اکرام نکن بعد ایشان بعد از این توضیحشون ایشان مئیار قدیه رو این میدونن که اگر از جزا متوقف هست شرط شکلنن ما دیگه این مطلب رو دیده بکنیم این محضرت به بارتیشون واضحه نه ما این مطلب رو به لغت دیگری توضیح دادیم. و ارز شد که در لغت عرب متاسفانه در مقام که قضیه شفیه برای مسئول برای بیان موضوع و قیل از اون یک تمایز لحظی نگذاشتن امکان داشت تمایز لحظی بگیران مثلا امکان داشت اگر در جایی که برای بیان موضوع اضافه بیاریم این نگاریم اضافه اضافه بردن اختنان یک خواهن چون اضافه مفتوم معنی شفتی ظرفیت داره، در ظرف وجود ورد خط نشد لسه این در موضوع این رو به کار بودن هیچ مشکل نداره و لذا از که در کتب و اصول بیان این نقطه کرده که ولو ظاهر حضوری یک موله شرقی هست لسه این شرق در حقیقت همون بیان جزاه این شرق بیان موضوع جزاه موضوعی که در جزا وجود داره این یک تبیر یا تعبیر استاد که جدال مصنفه است اولن بر او این دو تعبیر اون تعبیری که من ازش فهمیدم که در اینکه از آیات سناهی هستند سلاسی نمیشن شرط مکنده است که از یه سلاسی بشه یعنی موضوعی باشه، حکمی باشه، یه حالت وسیطی هم باشه این برش مکنده است. هم اگر موضوع را حکم باشه یا حالت وسیط نباشه دیگه مکنده نداره. این روزفه ولدن فهتن هستناییه این معاملش نه اختنی ولد این روزه ولدن حالا اختنی ولده نقطه خاصی نداره حالا این یه تغییر بنده تغییر تحبیر آقا کوئی دیگر شده در از به هر حال اشکالی که در اینجا شده که این شرط برای مسروع است برای به موضوع بعد ایشون وارد یک شرح دیگری میشن که شرق قد یکونو همرن واحدن و قد یکونو همرن مرکبن این درسته حالا مخواد بعدی تصویر رو ما نحنفی بکنن یا اون که خب اگر زیگ آمد اکرامش بکن اگر مهمان آمد مثلا نام بخر گاییم میگه اگر مهمان آمد روز جمعه بود نام بخر خب اینجا دو سا قیده یکی روز جمعه بودن یکی مهمان آمدن یعنی مهمان در غیر روز جمعه بود نام نمیخواد روز جمعه مهمان نگر نمیخواد این واضح حدثیشون از ذکر این مطلب اینه که وقتی که اینطور شد که دوتا قید داره اون وقت گاهی اوقات اینطوریه که هر دو قید مثل همین اگر مهمان روز جمعه مگر اگر مهمان راکبن آمد نام بخرد خب این هم مهمان آمده میشه یک قید هم راکبن اگر راکبن نباشه مفهوم داره اگر هم نهیم من مفهوم داره اما گاهگاهی اینطور نیست یعنی یک قیدش مثل مسروق بیان موضوعی مثلا ایشو میگه که گاهی اوقات اینطور میگه انجاک زیدن و کان محرمه من پر اکر بکن خب درست؟ اما اگه ای گفت این رکبل امیر رکان رکوب رو روی رو اومد جماعه فخوز رکابه و اینجا این قضیه فخذ رکابه نسبت به رکبل امیر مفهوم نداره چون موضوع به هر موضوع. اما کان رو و روی اومد جماعه مفهوم داره یعنی اون نقطهی که از کردیم به قضیه مسروح از برای بیان شهر در موضوع مرکب هم میاد. ممکنی یه قیدش من توقف و علیه وجود موضوع یه قیدش نه بعد این نقطه دیگری متعرض شنن ولی یعلم انه تمیز الجزء الگه اخد موضوع از الگوکی مقام الاسباد انه الجزء الگه اخد ال موضوع از الگوک حالا کدوم موضوع موضوع در اینجا در کبارتیشان واضح شد همون اس که ما وقتی دیگران ولی بر هم از ازش تعلیل به متعلق متعلق میکنن مرادش از موضوعی مثلا اینجا که زید و تاکید هو ها یا زید, زید رو موضوع گرفتن این وقت ان جزء الی یقول علیه هو اون چیزی که هو که معلق مجیه از یک موخیک داری که زید باشه یک چیزی که هو بر اون معلله شما اسمش رو واسه که سلاثی و اون مجید ایشون میگه نما با داره استظهار ننسی آخر کلام به حسب متفاهم ارخ مثلا اگر اینجا که زیدن فا اکرمون موضوع زیده مجی اما معلق شده اما اگر اینجوری گفت امکان از جایی زیدن فکر اکرمون این معلوم میشه که جایی ای این موضوع است و اینکه که زید باشه شرطه اینه باید ما به حسب نگاه در کلام به تدبیر ایشان این نکته را نشون کذا بعد از این دو نکته یعنی یکی مراجعه به موضوعات مرکزی که اینه که چطور بشناسیم یکی موضوع یکی قید الاعراب فزاله که وارد هلاك ان الشرط في الايه المبارکه شرط این آیه دو تاست دو چیز مرکبه یکی نبر دو کون الاتی به خاطر اینجا از اون فاسقون به نبه این این دو شرکش مرکب از دو چیزه ایکی خود خبر ایکی اینکه فاسقش و یکونو احد همان یکیش به هون نبه موضوع چون دارد فتبینو یعنی فتبینو احد فهم سادش بکنی اینکه موضوع هم موضوع اندل حکم بذکور فیلزتو لتوقفی علیه عقل حالا مفهومه للغضیه به نسبت ایده نسبت نبه مفهوم ندارد و جغل آهر و هوا کامونال آتیبیه فاسغن من مالار صرفتر این شرطه تعلیق برای این شده قید حالا قیدیست انتصاری فتدال لرغزیه یا تا با علال مخفوم به نسبت اله نسبت به نبه نداره نسبت به این که آتیبیه نسبت به اون مخفوم داره و مفاد آیه مبارکه ازم و وجوب تبینه هم اند انتفاق کمند آتیبی فاصل هم آتیب و افکر اون فاصل نبود دیگه تبین نمید بند ایشان این تا اینجا تا این سطحه 185 ظاهر واسونی که قبول دارن نسل خود مرموم نایمی نایمی هم تقریبه هم تقریبه داره نایمی و حتی آغازی تقریبا همین تقریب رو با یه اختلافاتی و قبول میکنن ثبوت مفهوم رو مفهومان این هم قبول میکنن در مفهوم شهر در بعد ایشون و توهم من... یک توهمی رو متعرض شدن خیلی این توهم تو عبارت و اهل سنت و در عبارت مفصل هم آمده بله. مطلب خیلی مهمی نیست میشه مراجعه کرد محضب بله. و سعی کردن یک اشکال که جواب بدن تا صفحه 187 نقطه خاصیش را نداره جز تشیجه ذهن نقطه خاصی خدا را مراجعه بود از صفحه 187 از آخر صفحه سطح آخرها و از ما به دورت سابره تا اینجا این دو که متفرقاته قبول کردن سبوت مفهوم رو که آیه مبارک دراز و قبول خبر پا عادت میتوند از اینجا حالا از دوره سابقه ان محفوظ و, و, و این تقریبا تکرار ماه اما خب ایشون نشون در دوره سابقه دوره صابقه را آخری کلام برده. کلام برده. بر حال دوره سابقه اخر کلامش آورده بوده اولی کلامی بود هر حال ایشون دوره سابقه شون این مطلب رو که معیار در مفهوم این که موضوع داره, دو تا حالت. موضوع داره دو حالت باشی. واضحه اینجا اگه زیادم پریمون زیاد داره دو حالت ماجی و عدم ماجی. و قلع اول قلع الار... حکم اعلام احدها حالتی بر ماجی تعلیم مولویان حکم تکیه می‌کند. این حکم مولویان. به آن لایحه کنم تو آقای فن الیه‌ها و از اینشون وارد بحث میشن از اینجا و از اینجا می‌بریم. حالا من ایشون در دوره‌ی صابر فرماندهی بحث رو برای کی کردند؟ مقدمه می‌برم. و مگه دور سابق قبول داشتن همه خلاصی تحقیق دور سابق رو محصر می کنم از این ایشون وارد این بحث میشن که مفاد این آیه مبارکه چیه این حوض این از این زیر 180 یه دفعه ایسه حوض می شه خیال در کلمات ایشان هست تا اینجا جا با حایتا مفهوم داره مفهوم شن به اثبات میشه شه خود خبر دفعه برای آدل از سفتی سد و, و آخرش ایشون برمیگردن و خلاصه برگشتنی که ایشون میفرمند اینه ما باید ببینیم بله ما باید ببینیم اصولا این آیه مبارکه رو چی جور معنا بکنیم از وصفای صفحه دردی به چون چونه محدمه خیلی مفید نیست اونی که محل کلامه و علیه بنا بر این مقدمات یه شرح زد این که امکان الموضوع فی ال آیه المبارکه هو النبع از اینجا بیان احتمالاتی رو در آیه می ده رو آیریشو تحلیل میکنه احتمال اول آیر این رو معرب ان نبع امکان الیادی به واسطه فتبینوا است موضوع نبر موضوع نظر نه موضوع منه مبتدار و تبایی نوعنه عنه نظر اینم دو تا حالت داره مجیع الفاسر و مجیع غیر الفاسر درست وقت تباییان آمده رو مجیع الفاسر فس معنیش این مجیع غیر الفاسر تباییان نظر این احتمال اول به تحبیلی شد که موضوع رو نبه بکیری بله برز دونشتن اینه التب... فعلا مهالت تضدل قاضی من بعدی وقتش هستم که آن مراجعه ای کنم من اونو هم دلیش اومدم. تدلل... فعلا مهالت تضدل قاضی تو على مفهوم دوست. این احتمال اول میگم متن سفانه دلیم شاب کتاب شماره گذاری یا خطوط دروشی خط سیاهی بینی میزن که مطلب واضح تر احتمال اول اینطوریه. نبع موضوع از مجیق الفاسر به شرکش این احتمال اول احتمال دوم دو و کلالک اله حال میشین کلالک اله حال میشین شوان میشین شماری شو دوم احتمال دوم دو امکان الموضوع ها الجایی, الجایی به نبع امکان فاسر اینطوری این و کلمه جایی رو المصطفاد من قولی تعالی این جا و ولو فعله ازش جایی درده فعن ال جایی به نبه قد یکونو فاسرم و قد غیر فاسرم احتمال دوم، امکان ال جایی به نبه فاسرم فتبینم این خباتشون که مفهوم داره امکان ال جایی به نبه غیر فلا تبینم و قد اون لگه وجوب و تبین علا کنی فاسرم در به نبه. مفاد جائی به نبا و یکون مصادر کلام hinezen ان الجائی بان الجائی به نبا امکان فاسقن فتبین فر هذل القضیه علی المفهوم این هم احتمال دوم احتمال سوم میگم شماره نگذاشم آخه کتابیشون ایشون از شفافا متعارفان شماره گذاری کرده احتمال سوم اما امکان الموضوع هو الفاصل بگیم این الفاسق انجا به نبع فتبین الفاسق انجا خب این لم یه جه به نبع یه نبعی نیست که تبین میشه قضیه به اتفای موزه ساله بود کن و این الفاسق قضیه جیع به نبع و قضای جیع به و اول وجوب و تبین الان مجیعی به نبع و یکون و مفادر کلام این ازن ان الفاسق انجا اکن به نبعی فتبین اگر این باشه فلا دلاتل قضیه تا علا مفهوم توی مفهوم نداره لعن تبقه تبیان متوقع کن علا مجیعی به نبیتون باید قبروازتون تبیان بکنی فتقون و قضیهتون مسئول بسن لبیان الموضوع بعد بعد پس سه تا احتمال ایشان در این آیه مبارکه دادن یکی این که این نبه امکان از جایبی فاسرند دوم این کانال جایی به نبر خاصه هم سه هم این کانال خاصه هم جایی این سه تا احتمال تو این آیه مبارکه روی دو احتمال اول و دوم مفهوم شرط داره و به درد ما نفیه میخور و احتمال سوم نداره. این سه تا است که ایشون رو چند در دوره سابره ما گفت ما رو خب او این اول که بطنیه حق چهار خواهر مختلفی فهمدن هر طب که این مختلفی هم که ایشون در کلمات نایی نهاری این احتمال ها انبته مفاد این معانی در کلمات نایی آمدن اما به ساعت احتمال سرات نهاری شبیه اینها در کلمات آغازی آمده مدسال الله و چون ما همه استاد کلمات آغازی ها لهم به اجمال نمیم به نایی خیلی بزار و کلمات همچه گاهوی هم فرقم گاه آ با این که شاگلشون هم بودن مدت مدیدی نمیدون سه بشین و هر حال شبیه این سه احتمال با یه تقریب دیگریشون میدین هر که آزی قلب خاصی خودش داره یه اقلاق خاص خودش معمال گونه از لغز گونه حالا دیگه فکرم حرف آزیاره فکر فکرم مشابه میشه قرارم این سه احتمال به این تقریبی که ایشون فرمودن حالا با یه تقریراتی سه تا احتمال در تلم البته آزادیا احتمال اول رو میگیره که موضوع نباید نباید اگر جایی بون فصل بود تباین جایی اگر جایی بون غیر فصل بود تباین خودش این احتمال رو احتمال اول این احتمال تو کلمات ناینی هم هست؟ نه دوست احتمال تو کلماتی شفا هست که سونی چه دو مورد هستند برای آیه مبارکه بیشتر و این احتمالند یعنی آیه رو اینجور معنا میکنن حالا بعد در شهرهای بحث ساده توضیح داریم، اینا فقط ده همین مقدار اتفاق کردن ما توضیح دادیم که نقطه قرمیش اینه که آیا آیه متعرض حال کافر یا حال نبرد اینا به زبان بیزبانی میخوان بیان خایه متعرض حال نبرد ممنو استاد میخوان بگن نه و ظاهرا منها این مقامل اثبات من های به حساب الفهمل اولفی همه المعنه ساله هست فلزا قدیه مفهوم نداره ایشون معنه سوام رو الفاسق انجاعه به نور مثل اینجایی معنه رو کنیم خب انلم یا جهبه نور دیگه تبیانه معنه خبریم خبری همه هست لا بین علا آیت شریفه این معنی اولفی ایشان بد نیست این مثل این میمونه که اگه کسی شما گفت اعتاعت زیان درهمه فتح صدق دیگه این فتح صدق دیگه اون درهم اینجا قضیه در مقام بیان مسروح برای برای موضوع تحقیل موضوعه اینجا قضیه هدف از این قضیه برای تحقیل موضوعه برای منحهی صلح مفهوم مثل همون دیگه این اعتاعت زیان نمیشه اون درهم حتاب میشه و ظاهر و منحاز الکلام و حسب العرف وجود و تصدق به درهم علا تقدیر تازه از این یاد و اما علا به تقدیر درهم دارم یک کلیست که تصدق بکنه و تصدق به منتقیم به انتفاق موضوعی ایشون اینجور به اطلاعی مثال عرفی میزنه بله و یه شرحی هم برای اینکه وشون و ایشون میگه انجا کن پاسه به نبین از خبیل اینه دوشنشن. این سه تا احتمالی بود که مرحوم و استاد دادن و بالاخره همین احتمال رو ترجیح دارن پس آقایان در ذهنشون باشه از صفحه سد و سعی کردن اشکال این که قضیه آیه موارده که برای این قضیه شمعیه مسئول قصداره برای انتحال و موضوع فیه. رفیه جواب هم این موضوع قضیه خواه ندر این که اینل موضوع به قضیه قوان نبر درست در آخرش میان اما میگن مصب کلام برای خود نبر و حالات نبر نیست مصب کلام برای این است که فاسق اون نبر رو بیاره خب اگه فاسق نبر رو نه نبع یه خبر نید. اینی که عرض ایشون یک یکیو صحبت میکنن بعد جور دیگه صحبت کردن این تخبر نشه متناقض در کلماتیشانش ارز کردم از صفحه 184 تا 187 سعیشون اثبات محلوم داری لکن اکتفا کردن به همین سه احتمال از بعد از او به سه احتمال اما اون تحلیل نقطی لطیف فنی رو که از کن خدمتون متعبض نشدن خلاصه کلمات مرموم استاد موشن چون یون این کتاب و عرض کردیم مرحوم ناینی صاحب خیری با معنا آذیا هست آذیا مسایقویی سه تا معنا میکنه اما یه ناظر به نظر میذنه آیه رو به نظر و حالات و دو حالت داره اول یا خاصه میاره یا غیر خاصه میاره در خاصه طوایم می در غیر خاصه طوایم اینم خلاصه است مرحوم آذیا و کسانی که این مسئله رفتن فاولسیام اولش همین مطلبونی است بعد من یک خلاصه ای رو راجع به استدلال به این آیه مبارکی یا استظهار وجود استظهار رجعه قبر عدل تعد بزن از آیه رو در طی تاریخ اسلامی یعنی از 1400 خورده ای سا که گذشته این رو عرض بکنم بعد به این وارده تحقیق محلط بشیم خب خلاصه ای کلمات آیه خوی و بزرگان قبلیشون را این خلاصه عرض کردیم که استدلال به آیه نبه از همون اوایل مطرح شده این طور نیست که به هر حال این استدلال با یک بوده بوده. سرچشم این بوده که محل بحث در روایات که متضمن احکام است. نه متضمن موضوعات خارجی. اون سرطایه ناتا متضمن در یک مسئله خارجی هم هست. استدلال بن المصلح خود مغرمینایی رو این جهت توسل کرده برای اثبات مفهوم که آیه مثلا نسبت به مرد خودشه که بخواد چامل بشه باید قائل مفهوم بشید به هر حال این یک یه توضیح و برز بکنم این آیه صحبت های زیادی شده هم به مفهوم ورس در آیه تمسک شده هم به مفهوم شهر در تاریخ اسلامی چه در ورس های فقهی چه در بحث هایی کتب ادهی از فقه مثلا آیه رو بردن یا برس های بیشتر بعدی اصولی و کلامی وقتی که من اصولی وصولاتی این بحث رو به آیه 90 و مجموعه اشکالاتی که شده به طور کلی اینطوریه به مجموعه بحثی که شده یک کسانی هستند مثل مجموعه سید مرتضی اصلا قائل به مفهوم رد نیستند خب چرا تو آیه 90 باشه خیر آیه 90 باشه اینا قائل به مفهوم رد اشکال سیر مرتزا رحمه الله در کتاب ذریعه شیخ هم اشاره میکنه از تا بوده به مفهوم ورس شبیه اشکال آقای کویه همتا آقای کوی نفاید شبیه هونه همتا آقای کوی فهمنه الییت اشعار داره اما الییت منحصر نیست حالا اشعار نیمیشه شبیه آقای کویه که میفهم مفهوم سیر مرتزا مفهوم ورس و مفهوم شبیه اشکال ما نه ما اشتاییمونی که محکوم وست شدیه محکوم لغم و توضیحاتش بذاشت پس یک بحث این است که راجع به محکوم وست کلن با قائل نیستن این یک بحث یک بحث است که راجع به محکوم وست یک درجه از محکوم قائلن مثلا رو خوی این حسار در نمیان در نتیجه این محکوم اصطلاقی درست میشه این دو بحث وشه سرگون وشه که اسطلاقی برمون نایمی فالبته شاید در کدما هم در اصولی که باشه اما الان تو ذهنم نمیاد و خلاصه اشکالش که مفهوم جایی است که موصوف هم ذکر بشه اما اگر وصف تنها باشه مفهوم, مفهوم لغوی داره این حرف مفهوم ناینیه این راجعه به مفهوم wzgl است پس راجعه به مفهوم wzgl اشکالات اساسی مطرحه اما کسایی که به مفهوم wzgl تمسک کردند دو تا تقریب معروف دارن یکی همین میگه که مثلا انتفاع واس، انتفاع ووک میشه. اگر فصل ما وشید، اگر فصل وشید، تابعی وجود این یک راهشه. یه راهش هم هم اولیت که از ساخت رازی نرفتنیم و شیخ طلعن صریا مورده. دیگر در کلمات آذیاض یا رام آماده نرم است، نرفتار نرم میشه. و خلاصش اینه که در این دست، اگر خرید فینصه حجت نبود، گویی نرساده کنم نرم. شرکم اینجا کنم فصلو. پس همون شد خبر واحد پی نفسی ها به عنوانه الابرلی غیر معتبر نیست با قصد اینکه جایی فاسق باشه غیر معتبر پس این درد دونیم که اگر جایی فاسق نبود معتبر این خلاصه پنج احتمال و پنج ور راجع به مفهوم بس. و یه اشکال دیگری هم کلن در مقایین هست هم اضافه کنیم اشکال ظاهری ها امنه هست اشتال ابن هرز در با محکوم وصف اختصاص محکوم وصف نداره ابن هرز میگه محکوم کلن حجت نیست چون ابن هرز به اصطلاح ظاهریه مثل اخباری های ما ایش میگه هر هو با تو منطوق باشه ما به محکوم یکی ترسیم حق حجت الهیست حقیل الهیست این باید ایک قیام واضح داشته باشه این که بگه اینجا کن فاسق این فقط ما در خبر فاسق خبری هم. این چیزی که نداره اصلا مفهوم نداره کلا اشکال ابنه هست و ابن اینه که کلا باب استظهاره از مفهوم رو میبنده به هیچ وجه ما به مفهوم مراجعه نمی کنی. چرا؟ ما باید در باب افکام منطوق داشته باشی. لفظ سریح و عوشن این لحظه سلیم و روشن دیگه خبر فوترا فالیم هر نیازی تموم شد دیگه هیچ چیزی زدن فاسق خیر فاسق اینم عادل این حرفا دقیقاً پس یک اشکال هم اصلا یه تفکری در اصول که میگه ما دلیل شرعی ما باید دائما منطوق باشه ما اصلا دلیل شرعی غیر منطوق قبول نمیکنیم هر نمیش میخواد باشه همیشه اون مقدار رو قبول میکنیم که منطوقه و عرض میکنیم. اما غیر از این رو مثلا بگیم این چون توصیف فاسب شده غیر از این هم قبول نمیده خب این هم مجموعاً شیش وقت مابل منکرین و مصبفیل محکوم وست در اینجا یه ازدهی هم از علمای عام مثلا میگن مخموم حجیت نزاره یا مفهوم شرط یا وست یه از اواز ترمازه درده اما در خصوص این آیه مخموم داره اینم یک را که در خصوص آیه محکوم داره و اولان محکوم نداره یه راه دیگه که در اینجا در تکلمه کلام ابن حرز در یک جای دیگری از کتابش احکام گفته من خود احکام این قسمت نهیدن نهرون ها از مستر دیگری یه خلاصه دیگری ابن حرزون داره اون اینجوری تمثب میکنه میگه این آیه مبارکه فقط ناظر است به فاسخ که خبر فاسخ طبعیم آیه نفر هم داریم فلولا نفره که اگر افراد هستن در حوضه های علمی درس خوندن فقیه خودن برگشتن قبل اونها حجته که میخواد یک نفر باشی, بیشتر باشی؟ که بیشتر باشه. این فیلم تمسکه به آیه نفر میکن در حجت خبر آیه پس میم یک کار میکنیم بین دومنتوق جمع میکنیم به محکوم دست نمیزنیم میگیم این آیه گفت کسی که رفت در حوضه درس کند آمد و انذار کرد و یونس روما هم وزارت او الیگه لازمه هم یاد زدن انذار کرد خزر واجب سماع کلام او واجب حرف شگوش شو لازم کنه این آیه امنطوبش اینه که خبر فاسق تبیین بکنم خوب دقت کنید این دو جمع چم می کنین همین دو تا رفعون یه کار ندارین همین دو جمع رو چم می این میشه خبر کسانی که میان تو حوزه تفکر میکنن برمیگردن این مقبوله لیکن اگر فاسق باشه دو اون آیه محبول نیست این آیه اگر عادل باشه بگید آیه محبوله اشون از این رو اینجوری جمع میکنه میگم ابن حض خیلی مقید است به دلالت سریع و نست و واضع در سر جمع بینی رو سر چه که ای اینطور میشه آیانی که بیرم در حوزه درس میکنن برمیگردن انظار میکنن اینها اگر قاسق باشند با آیه نفر قابل قبول نیست اگر آدل باشن با آیه نفر قابل قبوله پس اطلاق آیه نفر رو ایشون برمیداره چون آیه نفر داره که اینا مطلقا درس این میگه نه اگر قاسق بود قبول نکنی پس نتیجه چی میشه آدل رو قبول کنی اما در ضمن آیه نفر نه آدل مطلقاً. محسوم نداره ده. چون اون کسی که میاد یا عادل یا فاسق دیگه اگر فاسق با آیه نبغ خارج بشه اگر عادل به هم آیه نفوذ داخل بری فاسق می‌کنی یا آیه زینه آیه دیگه بودن نمیگیره خبر نمیشه ها اتفاق عرف دینی ولی اینزه در خصوص احکام میشه سر اینکه ادعای شما مثلا رو میگن حجیت خبر واحدی خبر ثقه شما به سیرا اوغلا صادزه سیرا اوغلا فهمیدن موضوع حکم درست اما مشهور بین علماء ما کسایی که قائل به حجر خبر ازلن در خصوص احکام قاعده در موضوعات خارجی قائل نیستن حالا یکی از وجوهش همینه حالا وجوه دیگر خودر که جاشه یکی از وجوهش همینه پس این ایشون میگه خبر عدل حجته نکه نه خبر به ماه خبر آیه نبر لیتفقه و فدیهن و لينذر قومهم ادارته و اليهم این چه نظامی که تفقه میکنن و برمیگردن برای انذار اینا اگر عادلانه قبول میشه اگر فاسقا قبول نمیشه این یک سلسله خاص است مفهوم نیست جنب این جنبه انذار آیه‌ی مبارکه است این آییم نه رو شامل احکام میگیره مثلا شامل خاص احکام میگیره پس بااوردگی یعنی به این معنا خاص بیندن پس بنا برای این آیه نفر نه اسلام داره در موضوعاتم قول شد جد سارم پس بنا برای این آیه نفر و با آیه نفر جمع دارم من برای مجموعه کارهایی که در دنیای اسلام شده و نظراتی که پس یک نظر سبوت مفهوم وسته یک نظر عدم سبوت محروم وسته یک نظر اینه که اصلا مقاهین کلن حجت نیستن چون منطوق نیستن یک نظر ندارم در خصوص این مورد به این رو میکنیم یک نظر دقیقا به اصل میگن یعنی مفهوم حجت نیست اما در این آیه حجته که یعنی لابد از طریق از بس اسم اهل سنت من نمیخوام وارد اسمشون چون نمیخوایم این بحثا رو زندگی کنم اینا چه مفهوم بحث مفهوم شعرن یه مقدار کلماتش همینه یک ایده اصلا میگن از شریعیت الییت در نمیاد یه عده در انحصار در نمیاد ادده میگن درست مفهوم و شرط ثابت نیست در خصوص این آیه که ها مجموعه اقوال رو بگیرد ادده میگن نه در خصوص این آیه شرط محسوق است برای بیان موضوع و چون شرط محسوق است برای بیان موضوع دلالت بر مفهوم نمیکنه مثل آخرش این اشکال قبول می و این رو زیر بار نمید ادده رو حسن از بزرگان اهل سنده از متکلمین حتی نسبت داده شده به غای اولی که مثل شافعی و ابو همیک و اونها به اونها نسبت داده شده که اینها تمسک به همین آیه کردن راجع به حجد خبر عمد خبر واقع پس این چه به لحاظ مفهوم شد چه به لحاظ مفهوم وز در تاریخ اسلامی هر دو طرف قائل داره و تصدقان در طرف سبوت مفهوم و این که از آیه مبارک حجد خبر عرض تعبدن در میاد تقریبا شاید که بیشتر عذره که پترات تا اون ترم یعنی بیشتر ناسه معتذره و شیعه جزو مرکرینه و اما در به نهر سنده تقریبا این میچه نشون یا به نهر اول یا به نهر دوم یا به نهر استثناک خصوص مورد قائل به ثبوت مفهومه پس اشکالاتی که در اینجا مطرحه چه به لحاظ ثبوته یعنی صحبتهایی که مطرحه چه به لحاظ ثبوت مفهوم چه به لحاظ عدم چه به لحاظ وضع و چه به لحاظ شط وضیه یا شرطیه با این بیانات ما روشن رو شد که اشکالات مثلا مرحوم شیخ طوسی و سرمازده اشکالشون ما و رو قابل نیستیم شرطه قابل نیست اگر یاد اون باشه وقتی که کتاب وسایلن می‌خوندی صاحب وسایلن میگفت میگو باره باره که متوقع هست بر مفهمی که ما قائلیم که ادلال شواذه نیست و محل اشکاله ایشون هم اشکاله یعنی اشکال اخباری هم این بود که دلالت آیه به مفهوم و این مفهوم ثابت نیست این مجموعه اشکالاتی که راجبه یعنی بحث هایی که در طی تاریخ راجبه این آیه شده و مختلف مختلفی شده اثبات می‌کنند به اثبات مفهوم یا عدمه هرکسان که راجبه این مطلب تا اینجا من یک بکنم یکی راجبه مفهوم وصفه یکی راجبه مفهوم شعر این یکی دو یکی راجبه اینه که این جا اکن فاسقان این رو التا آه خوی آیا مجی در اینجا نکته داره اصلا اینجا اکن زیدان اون نکته داره چون زید دو حضر. یا بیاد که شما نمیاد بشن آیا اینجا مجی نکته داره جا اکن فاسقان به نبعه یا اصلا نکته نداره مراد نبعه فاسقه اصلا مراد از این عبارت اینه نبع اصلا مراد اینه اگه بحث شرط شبیه همون اشکار که برای تحقق موضوع شرط شرط نیستین، تعبیرا شرطه. شرط اصلا و مجیع هم آل خویی که از اصطلاحش این بود که امکان جاری بدی. نه اصلا مجیع بگیم ارزش نداره. اینجا جا ارزش نداره. اینجا جا کام حالا می‌خواد فاسد بیاد به شما خبر بده یا شما می‌دونید خبر این فاسد اینه نه از به شما خبر ظاهرن مراد خود خبر فاسده میخواد جایه باشه که <تصفح> اینقدر بحث کرد چون الان مطلب و عدات شرط جایه است دیگه مطلوب و عدات شرط اونه هم اختضار میکنه که تعلیق به لحاظ همون مطلوب و عدات شرط باشه میگه مثلا آقایی نقطه ای نداره عدات شرط در اینجا تأثیر خاصی نداره چرا؟ چون این مفاد کلاب اینه که نبال فاسد یا پسا هم کنه یه چیزی هست مطرح نیست اون که درش مطرحی نحوه اضافه است نه و الفاصل لا می‌پسواد این پس یک نکته قبل از اینکه وارد بشیم اینه که کدوم چیزی رو ما جائره رو برایش تاثیر بگیم یا جائره رو برایش شمل نطاس رو اول توضیح بدن نکته سوم که به نظر ما نکته اساسی است و خوب بود در کلمات آذری ما استاد این بحث میشد مساق کلام چیه سوق کلام برای چیه اصلا این کلام رو خداوند متعال برای چی اوبارده مثلا بعضی گفتن شاید هدف از این کلام بیان این باشه که این شخصی که این خبر رو نهارد کرد شخص اینوان ولی که نسبتا به حساب نسب از بنیامه یه بود خدا میخواد میخواد این شخص فاصله اعلام میکنم به مسلمان که این شخص پاسبه خب اگه این باشه که جای مفهوم مفهوم گیریم مساق کلام و هدف از کلام بیان حال این شخصه پس یک نکته است که ما مساق کلام رو ببینیم غیر از حال این احتمال که بیان حال شخص باشه ما از خیلی مساق کلام به طور طبیعی دو تا احتمال رئیسی توش هست. یکی این که مساق کلام ناظر باشه به حال فاسق و یکی از اوصاف فاسق رو قدابیان بکنه یکی از جات فاسق اینه که خبرش با فرس باشه. یا نه این ناظر است به نبر و شعره میخواد یک تصرف در سیره اغلا در واقع خبر بکنه و اون اینه که اگر شخصی از از شرعی فاسق بود این در خبرش تخفص بکنیم و اگر از از شرعی فاسق نبود خبرش رو تعبدن مطلقا قبول کنیم چشم بسته قبول کنیم پس این دکته خوب روشن بشه مسار کلام چیه اصلا اینجا اکن فاسقون به نبعه مساق کلام چیه روی نبعه یا روی حالات پاسه این چند تا شد ست تا شد این نقطه که به نظر ما در وام مخموم خیلی تأثیر داره آیا این فتبه ینون یک تأبد شرعی است یا ارشاد است در این حال به همون سیره و اغلایی یعنی شاره سیره و بین مردم متعارف هست تعب رحمون سیره یک نکته رو که کادی ممکن است از طرف ذهن افراد مخفی بمانه بیان فرمودن اما چون که فرمان با استله اطمین مکار، لعطف همه نفرن لق و اساس یعنی مکار مال اخلاق. یعنی مکارم مال اخلاق فضیه انسان انصراف. هدف من از ما از تحسین می حالا این تحسین چند تا معنا داره؟ چند تا احتمال داره که مورد از تحسین معنای واقعی چی باشه؟ هرکس تو فرمان با سلامی تحسین داریم چند. در حال ببین شارع مقدس یک امر اوغلایی رو مطرح کرده و اون نکته شینی که آیا اینجا اكو فاصل منفصل یک اصطلاح شرعیه یا فاصل رو به اصطلاح عرفی می گیرید چون شارع لطف تقوا در مقابل فسق یک اصطلاح شرعیه در همین کتاب روح القوان منتسکیو در اولش که مثلا حاکم باید تقوای سیاسی داشته باشه خب توی تقوا مفهومی هست که در ارتفاعات و هم هست و اینطور نیست که حتما مراد تحبب باشه جنبه اصلا تقوی اون چیزایی که در شریعت مقدس تحبب تقسیر شد شاید ناظر آیه مبارکه ناظر بی این باشه که خدا هم به نگاه که اگر انسان نیست لاعبالی در مقابل خدا حسیان میکنه این انسان اگر خبری داد داره در مقام خبر متحرز است که چه شاید چون ببینیم شخص آسيه لله و خروج از ساعت ادوی داره ممکنه راه معتبرم دروغ بودی. اگر خبرش رد کنیم تها صداده. بررسی بکنه. و اگر هم مفهومی آیه مبارکه داشته باشه یعنی انسانی که خدا پرست، انسانی که خدا رو در نظر داره، انسانی که خوف خدا داره چه انسان در حال طبیعی دروغ نمیگه. در مقابل انسان فاسد این انسان دروغ نمیگه. اما مجرد این که کسی دروغ نگفت کافی است و این که خبرش قبول کنیم. طبیعی از آن کافی میستید چون ممکنه خبرش معارض داشته باشه ممکنه از کسی نقل کرده اعتمال به شخص اون شخص دروغ بوده ممکنه از کتابی نقل کرده اون نسخه مقبیته بوده احتمال دیگه هم هست ب فقط بحث تقویید اونی که از آن اشکال در کتاب های ماست اینه که ما خبری داریم که یک انسان آدل سر یا یک مثل زرانه هم موکنیم معارضش هم داریم بلکه بازاتر بیان ما به اون خبر عمل نکرده مراد اینه اگر اصحار ما به اون خبر با اون جلالت عمل نکرده می غیر از صداقت و نکته دیگری بوده حالا تغییری بوده اشتباه بوده نصفه اشتباه بوده اون کسی که زهاره ازش نهار کرده اشتباه کرده اصلا وقتی زهاره از امام شیده چون از کردم زهاره از امام شیده در کوفه آمده در مدینه شیده در کوفه آمده به اصحاب خودش در کوفه گفته اینا اشتباه مثلا کم و زیاد ببین بحث اینه یعنی یک عوامل دیگری ه این کافی نیست از آن در مرحله ای که ما میخواییم من توضیح ها مفصل خدمت آن از کردیم آیان ما احل سنت یه عبادشون رو و بعد حتی شیعه, شیعه. اونا اشکالی این بود که اگر ما به خبر عمل نکنیم باب شریعت بسته میشه کتاب مدونه سنت مدونه طریق سنت همین رو بایان که کاشفه؟ این اشکار اساساً این بود. اگر این روایات نباشه ما چیکار بکنیم؟ راه گیران داریم. نتیجهش اصلا در نمیاد. لازمه خودت کاشف در حقیقت اون نکته اساسی فقط این نبود که این قسمتی که و خب ما می‌ریم سراره مطلبی رو نعم کرده اصحاب ما برخلاف او گفتن یا اجماع برخلافش یا مشهور شهرت بسیار این بحثی نشه یا چی خبری هم چاره گفته اسمش یا اوغلا میگه خبر حجت با این عسا این بحثی نیست اصلا در اینکه این خبر سره یا خبر اذرغا با مفید علمم است در این هم بحث نیست بحث در اون طرفه پس بنابراین باید این نکته هم ثابت بشه این مجموعه نکاتی که ما در اینجا داریم که ان شاء الله فردا توضیحات کافی را عرض می‌کنیم که آیا واقعا آیه مراجعه دلالت بر مفهوم ميکنه يا نه صل الله عل